گلوری انترتایمنت تقدیم می کند چیزی که لازم داری فقط اونا رو ورمیداری کامل نشده تو منو یه هفته زودتر بیدار کردی نگو اونقدر احمقی که میخواستی چیزای منو بدوستی چون میدونی چه بلایی سرت میارم هرچه ای مجبورم میکنی باکاشم نه نه نه من فقط یه بیچاره. بیچارم چه میخوام خونه وادامو سیر کنم تو که خونه وادایی ای نتایی محضورم خونه وادایی یه نفری بود خیلی خوب خیلی خوب سب کن صبر کن نگاه این هنوز پس در واقع نشده. او نه او نه او نه آروم آروم بایزار زرزیش بوده او نه دیگه نیست من میتونم همه شونو بنگردونم آره اگه منو بخوری کارت زیاد میشه ولی من میتونم برایشون گردینم گاری قرمزان دقیقا او او. کلمن آبیم چطور؟ کلمن آبی اینم تو نیست. حتما باید آبی باشه آره و همه یه اون چپس من عاشق چی بسم؟ من خوشم ا... از بخوری انگار بازم کم. متاسفانه درسته. ببین بهت چی میگم. من یه ساک پیک‌نیکی خیلی بزرگ سایز خانواده برات میارم. خوبه نیست. آره مطمئنم. خیلی خبرچای. خوب گوش کن ببین چی میگم. من میرم بخوابم وقتی ما کامل شه. من بیدار میشم و بهتره که همه چیزم دقیقاً برگرده سر جای اولش میفارم. این که میشه فقط یه هفته این کار غیر ممکنه. آخ باشه باشه یه هفته. آلیه چند تا نوچه میگیرم خیلی خواب ببینم چی کار میکنی فقط امیدوارم فکر فرار به سرت نزنه چون اگه یه همچین غلطی بکنی اون وقت من دهت بیکنم ب... و به کار شبت باشه باشه رفیق من حلش میکنم تا منو در این نداشته باش مطمئن باشی هفته اید که به این کارمون میخندیم هره کمپانی <Pintermworks> دریم وورگز تقدیم می کند آنسوگ تقدیم به بچه های خوب ایران Yeah, right sarparaste gugendegan aruz-u akhiri nozer-e keyfi mehrdad-e سر سرده، خیلی سرده ای کاش همه جام لاک داشتم آه. آه. آه. آه. آه. چه خوبه بهار، یعنی این که فقط دویست و چهار روز ها زمستون مونده آهای بلندش این خواب زمستونی دیگه بسه سابه خیلی سابه خیلی همین اون آبیش ها ازش میخوریم و خراب نکنی خیلی خوب با همه تونم تکون بخوریم بهاره یه آلم کار داریم آخ شد آخ نه ای برش بوده هی hey, باشه ما هم بلندشین چین مجبورم نکنیم که بیام اونجا من یه چیز رو همه زمین‌سون تو خودم نگهداشت فکر کنم حالا وقتش که خارجش کنم من پریپوره. پره. <تصفيق> ممنونم استید. من میتونم یه جور حسابی پاکسازی کنم آره این خوراک کمه. خب همه جیب خیر شما چطوری میتونید تو این صبح به قشنگی ببینیم بخوابیم ها؟ اوه خدای من واقعا او عزیزم از دور چشات معلومه که خیلی خوب میشی. هکیو کویلو سه چهار هفته ی بار بیدار میشدن. اسپایک هم همش سیخونک میزن آ او خب اون یه خورده سیخونکیه. اینا رو برجک تیر نشونه. نظرت چیه دوست داری شیفتتو بدی به من ها؟ البته که دوست اینیم جمع بی نام شری، اینجور ما به نفیضی که اینجا میچرخد. اوه نه، من از همین میترسیدم ترسیدم. قصد کجاست؟ چیزی موبه. من گوش نمی‌کنم. سون باید بگه چیزی موبه. آه، ما همه قضاها رو تو زمین خوردیم همین حالا باید بریم بازم پیدا کنیم. ترس نیم. با گذره با تو چقدر خویم چقدر؟ بی‌دنبه کجاست؟ بریم یه بار. ای خن به ما. بالا شدیم. پدر بارف بود. میتونست یه موجود موجوده درنده باشه قربونه به نظر شما این کار نشونه یه اه... نی هدر جان چند بار باید بگم موش مردگی کی در آوردن کار ماست ما خودمون رو به مردن میذاریم در نتیجه زنده میمونیم آی آی آی آی, آی, آی, آی آجان جان واقعا یه وقتش امسال برای یه همسر خوب و مناسب پیدا کنیدین یه همسر خوب یه همسر خوب میتونی میخوای شوهر کنی فکر من به یه مرد احتیاج دارم ها من جارو رو توی باتلاق میدم پس هر وقت تمیز که رفتارش با بچه ها خوب و هیچ بوی هم حس نمی پیدا کردین خبرم کنین باشه هی بچه ها هی با شما ها میبا غذا خب فکر کنم میدونین که معنی این چیه یه دقیقه صبر کن همی این معنیش اینه که با به اندازه یه نه تا توت از گشنگی فاصله داشته ببخشی اصلا وحشت نکنید. منظورم درد گرستنگیه که جدی و واقعی برد هنوز تموم هم. نشده همین بیا بگیرش لوبپنی باسی در <تصفيق> اینم مال شما ها خب چیزی که میخواستم بهتون بگم اینه برد. که همین هنوز حرفم تموم نشده اگه باید بری برو آه خب چیزی برد. که میخوام بهتون بگم اینه که ما باید امسال مطمئن میشیم که زخیمون پر شده بله درست بالای بالا دقیقاً تا بالای بالا برای اینکه ما چی هست؟ آلی چی لازم همین. چی بود؟ چی, چی بود؟ چی بود که میخواستی به من بگی؟ ها? چی می‌خواستم بگم آه. یادم رفت دیگه زبونم یه دقیقه صبر کن الان یادم میاد چی می‌خواستم بگم من چی می‌خواستم بگم؟ اوه چی بود؟ چرا یادم نرفت؟ یه چیز ترسناک تو جنگل خیلی وحشتناک، دو بلا بیاید نشونش بدونا. خیلی خوب جلسه رو تعطیل می‌کنیم بیاین ببینیم بریم جنگلیه؟ همین اون چیز عجیبی که میگفتی <تص> کجاست؟ Oh fuck and ching uh -huh. Oh Oh Oh, oh. <coughs> oh. oh. oh. oh. oh. oh. Chill. از این هیچ وقت همون نمیشه از اون بارم هیچ وقت همون نمیشه خیلی این چیه باشم هرسنون خیلی بزرگه به نظر من که خیلی عجیبت سیستم خودوی من یعنی چی میتونه باشه؟ هدر نه من میترسم من همون رو ماما نه ترسیم بچه این فقط یه لو اینچه من چهوی دونم ایال این رات شاید خب این خوب یه این واضحه که یه یه نوع بود ترسیم من اگه میدونستم اسم شیه کمتر میترسیدم بیایی نفس باشه من بخاریم استیف استیف؟ به قشاگیه به نظر قشایی می تو هستی به بازارگاه خود رتمند تو چی بخوای؟ من فکر نمیکنم که بتونه حرف بزنه صدا تو شنیدم زود باش بیا اینجا همین برگرد اینجا هستی و فکر کنم صدا از اون بره من منظورم اینه که اون بره بود من منظورمه فقط یه راه وجود داره که ما بفهمیم این چیه. خیلی خوب من میرم و یه نگاهی بهش میندازم. اوه او اصلاً نترشین. اوه استیو، برو خیلی خوب استیف خودت خستی پس بگی. استیلا صبر کن. منو نخوردی. من فقط پام لیچ خوردم. من دارم میرم اون ور. هیچ کس از جا شکون نخودی؟ بچه ها عجله کنی، دیرتون میشه آه. آه. Ağacın içine koyacağız. Oh, sen ne Oh, Betty. <Berfine>? Oh. <soy> oh, <Özalnızca bir> <grşütme> oh, oh, oh, oh, oh, oh,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 oh oh oh ma oh, alle nimici na daram rolende gi mi konum yeah oh oh yeah me no. au oh oh yeah ازیده، ازیده او اونا یه مش موجودات صورتی عجیب بودن فکر کنم موقعی که ما تو خبیز میسونی بودیم اومدن خیلی بخشن ناش بودن خودای من روپهاشون چرخ داشتن اونا منو با چوب زدن کارشون خیلی عجیب بود عزیز دلم تو باید میافتادی خودتو میزدی به مردن. تازه این قسمت خوبش بود بچه ها نیز از بین رفته درختای های بلوت و بوته های تمشک همشون رفتم و بخاطر سر؟ برای یه قضا چیکار می‌کنید؟ لو نگوش نگیم می‌میرید. <تصفح> راستش من نمیدونم فقط اینو میدونم که تا وقتی کسی نره اون طرفی است هیچ اتفاق بدی نمیفته به این میجان هرجین و چیز ترسناکی هم نیست دوستا دوزیستم من در واقع دروازه است به سوی زندگی خود بهتر اشتباهی نکنی من یه خزنده ام خیلی خوب بگذریم ببخشید شما اسم من آر جی رفیق جماعت جنگ چرا فکر نکنید من فوزم ولی نتونسم براتون خوش ندم من میتونم براتون روشن کنم که بازی میدونین جی. اون یه زمانی یه خشک و خالی بود و حالا تبدیل شده به 25 واحد تر و تمیز و بهداشتی چه آدم ساختنش. البته جز این نقطه کوچیک چه توشین نغرخی. نه, نه نه این یه حسنه. شما به خواب زمستونی میرین. مگه نه؟ حتما برای زمستون غذا ام ذخیره میکنم آره آره ما غذاها اینجا ذخیره میکنیم. همین. این تو چه مثل گاره؟ آره عزیزم تا چله پولش می‌ذاری نه. ا... چیو می‌میزنین می‌ریم چه تو این لاماساک پورشه؟ Devi su haftalığı çoğalıyoruz. این این هفته چطوره این غیر ممکن دیگه بافکار کنی میشه شما تو جمع کردن قضا مهارت داری منم تو چتو جمع کردنش اونورم چه بره قضا اوه یه عالمه دکتر کلی اون قچس نمیتونی فیکسشو بکنید خودت تو خسته نکنه فکر بعد بهت بگم ما اصلا از این قضاها خوشمون نمیاد چه بخودی به نظر من حرفاش یه جورایی منطقی میاد نه ایار تو کجایی آری منم با شوهرم موافقم اشتباه میکنین دم من داره میخاره ها پس چرا زور کر گفتم استمر ما, ما صح کن گفتی کجای خوره؟ وقتی یه چیز به نظرم درست نمیاد دو من و حرفای تو داره دم منو دیوونه میکنه حالا فهمیدی گوش کن ورنه زمان من این چیزی نیست که تو بخوای ازش بترسی خب ولی من میترسم و به عنوان یه دلیل خوب اینی که به این بینداز این واسه خاطر اینه که بدون راهنما رفتی این چیزا اصلا برای ما جالب نیست تو دیرت نشدی شما نمیخوای خوشمزه ترین که با عمرتون نخوردین رو بخورین نه عمر است ما دوست نداریم آه خیلی خواب بابا فهمیدم وقتشه که یه چینشونتون بدم تو حسابی کپتون ببره بود برگز. این رفیق ما یه ترکیب جادویه که تشکیل شده از اصل زررت پنیر خوش شده جامت اگه نخوری میشه فاسد بزن تورک رک پچه شدی سامت چپس چپس با طعم فنیش سیاحت کن خیلی خوب با طعم همه آو من خیلی درسته خیلی خوشمزه. بس ما اون شب دیریم اون بره پرچیم به اشقابا خوش اومدیم اینجا رو. با من نگاه کن ایفا چطوره خوب گوش کن اگه یه نفر تو این خانواده صدامه ببینه من تو رو مسئول میدونم اونا دارم خوش میگذرونن چی بشه با من <تصفيق> این تا کجا میره <تصفيق> میگم که ویرن اینو ببین بگم اونم اینجا چمالاش سبشتنن به نظر تو اینطور نیست یه نگاهی بهشون بنداز خیلی جالبن مگه نرم ببینم فهم <تصفيق> تو مطمئنه که همینجا اومده بودی آره برای این کلاکان نزن من میدونم حتما یه چلاکی سوار کرده اون که نمیتونه جادو کنه مثلا روی آب را بره ای رفقه رای غذا از این ب سوارش میشن چون کم کم دارن تماما یه راه رفتنشون از دست میدن ای چقدر گونده آره بخشت قربان چند نفر توش جا میشه معمولا م... یکی سلام من کلا دی شارپریس شما هستم اسمم شوم ملکین آره <ثق>. آروم آروم نترسینون فقط یه آدمی زانه اونام هم همین ما ازشون میترسیم و از ما میترسن واسه اینکه احیانا که آدمی شما رو دید فقط کافیه بخوام این زمینای زیتون رو لیز بزنین اونها عاشق این کارن دوست دارم <س rent> تو اینا می که شما امضا کردین گفته شده که چمنها باید دو اینچ باشه و چه قندازگیری من اون رو 2 و میشه ما فقط غذا رو برداریم و بریم در واقع اونها حسلم قضا دارن یا نه؟ مگه ندیدی؟ تو جعبه بود؟ اونا همیشه قضا دارن ما میخوریم تا زنده بمونیم اینا زندگی میکنن که بخورن ها؟ خب بزاریم بهتون نشون بدم. به دهن آدم ها میکن گاره به آدم ها یک یه کپه سیبزمینی اون وسیلهی که قضا رو جمع میکنه و این صدای قضاست یکی از هزاران غذا یکی اونم میخوره. این کار هم یکی از هزاران سیله یکی غذا رو باش جا آبابجا میکنن آادما غذا رو میاررم رو میبرن غذا رو منتقل میکنن سوار قضا میشن غذا رو میپوشن. اون غذا رو داغ میکنه این یکی غذا رو سرد میکنه اونم مطمئ نیستن چیه آه! آه! نه قصد بابا ها با این کار اونا عشقشون اون نساد به غذا نشون میدن غذا این یکی رو بهشه غذا بالا. و این کار تمام پرخوریه‌اشون رو جبران میکنن قضا! قضا! قضا! قضا! قضا! تو فکر می‌کنین سیر دارن؟ گمون نکنم چون به نظر آدم ها هر چی بخاری بازم کمه و اونا با چیزایی که نمیخورن چیکار میکنن؟ معلومه معلوم فسر اونا رو توی گوتی‌های نقرایی برراغ میذارن فقط برای ما <تصفيق> به جا بین خب چطره؟ این یک کنه بچه هست اینو نباس بخوری، گاقا لیلی نیست پاپت، نظرتون چیه؟ اقبادهاشتون بود یا نه؟ این آشقال که میبینیم فقط پس موندن سب کنیم ببینیم چه چیزایی تو جوه و گوتی ها درمیان مطمئن باشید اگه با من همکاری کنیم بعد یه هفته اونقدر قضا جمع می کنیم چه، چه، چه، یه خرصا سیر کنه یه ضربال مسئله چی؟ مزاهمه، مزاهمه، بریم گمشیم، بلگرده چی شده، عزیزم؟ Başın boz sade ببینم حالی تو خوبه، من چرا طورتون نشون؟ همین چی تو حالا دیدی حرفایی چه زدم درست بود؟ این آدم ها نمیخوان که ما اطرافشون باشیم آه، ما اونو ترس، اون دیمونم کرد چیز مهمی نیست؟ چیز مهمی نیست؟ او، اما برای ما خیلی مهمه بیخیال به قضاها فکر کنین، خیلی میازید، مگه نه؟ میشه واسه اونم مرد ای قلبه، آی الالب... بزن یه جو دیگ نه، نمیخواد بگی دیگه کافیه خوب گوش کن، ممکنه زندگی جنگلی ما از نظری یه نفر خیلی مزخره باشه ولی اینو از طرف همه خانواده میگم ما هیچی از اون طرف پرچین نمیخوایم به دست بیاریم آسف کنیم شما آنو بیاشکی نخوردین اگه بخورین یخت چربی زخیره میکنین اونجوری تو زبستونم عرق میکنین خب، باشه، <محن> باشه بچهان روش فکر کنین بعد نی، بعد نه تو میپرسم. شوت، تو مشتم بودم. شب بخیر نیو، شب بخیر، شب بخیر آذی، شب بخیر، شب بخیر هدر، شب بخیر، شب بخیر پنی، شب بخیر، شب بخیر هنی، شب بخیر، شب بخیر شب بخیر پنی شب بخیر شب بخیر هنی شب بخیر شب بخیر اسپای شب بخیر باش. شب بخیر کویلو. پنجم. شب بخیر. پنجم. شب بخیر. مونده شب بخیر. پنجم. شب بخیر. فقط شب ای پنجم. چپس بخیر. پنجم. شب بخیر. پنجم. شب بخیر. پنجم. شب بخیر. پنجم. شب بخیر. پنجم. شب پنجم. شب بخیر. زنده می‌خوای کمک کنم؟ چی شده؟ که می‌داشت منو خود می‌داشت کمات خوشش میاد من برای خود <تصفح> که پولی تو دیگاه نیش بیاین بچه‌ها بردارین ببینی بابایی برای صحبونتون چی کنگه <تصفح> ماما من پلشکه می‌خواهم من نیستن می‌خواهم Oh. Really��? Oh. Okay. Oh. شفت کلی وقت میبره که به جاییش اما گرشدگی تو حسابی برطرف میکنه به هر حال کلی هم خاصیت داره یه آلم خوشمزه هست موافقم اون به نظر خوشمزه میاد تو،, تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم اینجا تا تو جمع کردن عرف کمک کنم گوشگان وین، تو دیروز یه چیزی در مورد گروهت گفتی؟ یه چیزی بود که با خش شروع میشود، ببینم هنو یادته؟ وادی آره، آره، همون، همون منو رو کشوند اینجا یه زمانی من همه چی داشتم خونه مخصوص که توش پر عشق بود کنترل از راه دورم بود ولی توی حادثه ماشین چمن زنی همش رو از بین رفت <تصال> اوه خودت اومد بیا بکارم عزیزم اوه یه سر منو خیلی سختی کشیده بود من چمنزری ورن نیفرن من جد جمانزه نه من دیگه خ خ خ شما خوش باشید، به من فکر نکنید از دیدنتون خیلی خوشحال شد امید بارم باز بزنید باشه، هی آرجی، آرجی تو میتونی بمونی؟ می‌دونستم که زیر این پوست سخت قلب و رو دوست داشتنیه اشکال نداره بهت بگم امو ور؟ نه، به هیچ فکر عالیه، همین یه دقیقه بیا کارت دارم بی... میخوای کمکم کنی فندقام رو پیدا کنم صد البته که میخوام اطمان کمکت میکنم ولی اول میخوام این رو نشونت بدم آه؟ آه، حال میکنی ولی این شیرنی عشقاله بای شیرت دوست دارم خیلی خوب خیلی خوب ترش نکن من میدونم کجا میشه شیرنی پیدا کرد اونا رو یه دخترایی با یونیفورم میارن حال فکونا، فکونا خوش شیرنی پزن شیرنی پزن ای ای فکر کنم خونه شونی زر او نه هاشن خوشمزه تنی شیریایی که حتی نمیتونی فکرشو بکنی کشمشی، شیر میخوامی، شکولتی، فندوی، مرکز فکرشو بکن، همش مال توه میخوامیخوامی کچه میگه دیگه صب کن رفی من عاشق انرژیتم ولی این راش نیست مگه ده گفتی اون دا مالی بعده مالتون میشن اگه ما بتونیم از انرژی تو تو نقشه من استفاده کنیم تو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 خرگوش، چیزی که ما اینجا لازم داریم یه سنجابه هار خرکله وحشی، خب میتونی؟ ببخشید جونم، همین به نظر من خرگوش ها وحشی دیستند اون ها دا همشو دازگو با بزده و دوستاش ندید خرکله، نه خرگوش او چی؟ خب، اول از همه باید موعاتو به هم بریسم اینطوری خوبه، صاف باشد بینم، این که فور نخوف یخت توف، مال تو حسابی تن تنی شی بدنم بجه میرم، حالا چشانی بابا خوروی بیمیدم، بجام هی تو تودم یک دوزداره با ترس بگم ببین یک چون همی جون مادرت یختو تمرکز کن، میشه؟ باشه ممنوع، بذوین it. Mm -hmm. <laughs> uh ha What <laughs> shit! Honey. Oh, oh. Honey. Yeah. Halle, <gülüyor> <gülüyor> Alın برو طرفش برو طرف اون چی اونجا چه خبری ببینم همه مشی رو برا صبح اجرت چون به این میگی رو به راه جانم اونو میکشن چی میکشن صبر کن من دارم میام اوه اوه به هم خود به هم به تو رفیق نابقه‌ای راستش چطا بگم فوق‌العاده‌ای اون خدا به جور همین کارت واقعا معرق شبود حقصد تو منم تهزوندی نزدیک بود میان با یک کتاب بکوبم تو سرت اصلا نگران اون کبودی ها نباش زود خوب میشن و همش چند تا خراش سطحی هم. <gülüyor> oh Josh, oh, don't oh مامانو فک چوبه ما هم کرد. فکر کنم هاری داشت. چی موجوده تو زیست؟ چند تا رو لختم بود. خجنگی. خیلی خوب دخترها برین تو. یه شیرینی بخورین. تلویزیونو رو روشن کنین و رو آروم باشین. بش مامان رفتین به بخش چانیس. من درست شنیدم که اونا میگن سانجا بهار بوده. اوه به نظر من بهتره اینقدر شلوغش نکنی. آخه اونیا مریضی همه گیر بشه بیفته به جون حماموجی. جون برای همینطوری پرست بزنن بیماری پخش میکنن. چیزای ما رو هم از بین می‌برن. فهمیدی؟ آره من یه ظرف غذا گذاشتم رو گاز ممکنه سر بی. خوبه نگران ظرف غذات باش. منم نگران تموم شدن آرامش اطرافم و ذعب. خدای من. بله خب، هل ندید، به همه میرسه یه جبه مخصوص تو دارم پنی دست درده کنی، بخوریم بچه ها هر چیزی که خوشمنده باشه برای تو بینم، پشت گیز گیز میکنه خب، من برای دیگه خب، قهندت آدم ها را دیدیم بدون کمبود انرژی یخته از این بزن این دست میاد اگه از این بخوریم، تابستون در از یه هفته واسه تو میگ Eyle Cobin Chavez ye çeşmeş bu. Can aşk o hat Oh <coughs> <laughs> <laughs> We make a good team, me and you. We do. You stretch my back. Oh. Oh, not like what I of. O lastra we all fight بیشتر من یادم نمیاد کسی اجازه داده باشه اینجا تجمع بکنه. گروه بیشتر از 10 نفر که بخواد تیمی ماشین بیار زود باش. کارو داره میشه ضرورت نه نه جونه توی که داریم با نور به من اشاره میکنیم من باید برم به به روشناییم این دره چی کار میکنه؟ بکنم ضرب وقتی شده بد بفت شماها خیلی دور رفتیم زود باشین بیاین از اینجا بریم بچه ها نه این بر خوب گرفتیم شماها خطرناکی نبتون دیوونه شدیم من دارم میرم به خونه نه بود کنه سرخ حالا میشه بهش دست درم نه میبینین؟ برای همین معنی جونوور کش میخواستم تا اونا رو قبل ازی که اینقدر صدمه ببینن بکشیم همه اینجا رو تک کنین همین هده آن خوبه و دستی رو آره بگیریم مرک کن بکش بکش بکش بجو بیقایش بجو بیقایش بجو بیقایش کنم یه نفر که با جونه مشکل پیدا کرده بود به من زنگ زد باید بگم که راه حل جوی شما ویس ساده دان للفن تو یه چچم به هم زدن مشکل شما رو حل میکنه شما کجا بودیم میخواستم براتون یه مهمونی خوش آمدگویی برگزار کنم تا حالا ماشین ادبی از شما بیشتر جون کشته لطفا آروم باشید ابجی خوم من شخصا تضمین می که اینجا هیچ بری زنده نمیمونه چون جون کش حساب تک تکششونو هی اونا رو فیل کنیم فیل کنید ببینم ما اینجا چی داریم؟ Della fismar su pialis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 من با کیا طرفم موش خاربش راسوب سنجاب راکان، دوزیست خزنده نه خزنده آقا خوش بوش بابا یسپ و ریزاد بسر اونا رو, رو, رو, رو, رو, رو, بند... رو کرده میخ کرده بودی تو فوق العاده ای خیلی مامان پدر باید بگم کارت به نظرم خیلی عالی بود هنگی بفت خود آزی آزی اما ما نباید راه نمامون رو این کار فراموش کنیم. آر جی آرجه بیا بریم میخویم یک چیزی نشونت بدیم باشد با با جون؟ باشیم با اینجا باشیم با رو عجله خونه جدید تو خونه جدید تو با یه جایی که بخصوزه تو درست گردیم این مال منه آره، همش مثل همونهایی که قبلا داشتی آرژی ها؟ این هستن شبیه اون چیزایی که من داشتم <تصوح> بیا با این اجازه ندارم ازش بخورم ممرون میگم، این همون کیف من نیست؟ آره، تو دیگه لازم نیست رو اون درخت بخوابی آرژی جده <تصوح> وای هی آرژی، اینا ببین، ما جل و آلم کادال داریم تا پدرم کنترل برند داشته بگیرش وای یه کنترل از رای دور اینه عالیه بچه خیلی عالیه و حالا با هم ادامه یه برنامه رو میبینیم تو باید از خودت خجالت بکشی ما تو رو به ودمون راه دادیم اما گولمون زدیم من قلبمون دادم به تو به تو عزیزمونو هزار تکش کرد. واقع بین باش وقتی تو احساس یکیسه عشقالو داری برای اینه که تو واقعا یکیسه عشقالی حالا بلند داد بزن و بگو من, من یکیسه زبانم چیسای زبانی؟ من فکر میکنم اون یا روی دکتر واقعی باشه که تو فکر میکنه اونا کیه هنه آرژی وای وای وای پسر داری چیکار میکنی؟ تو خیلی وابسته شدی آرژی آنه، فقط قضا رو بدوست، خیرس سیر کن قضا رو بدوست، خیرس سیر کن قضا؟ قضا کن، کو قضا کو قضا کن؟ کو <تص> آف ورداری چیکا میکنی؟ اینا رو برمیگردونم همون جایی که بودن نه پسر نکنه میخوام من برم خوبه تو برو منم این چیزا رو به ساهمش برمیگردونم چی؟ چرا؟ بنای اینکه ما آدم رو عصبانی کردیم ما نمیخوایم آخر آقابتومون مثل اون خرگوشه بشه بنابراین من اینا رو برمیگردونم و اونا ما رو نمیکشن به همین شادگی ورم تو چرا نمیفهمی؟ ما اینا رو لازم داریم نداری من چون نمیتونه اینا رو ببریم؟ چرا؟ آه. چرا میتونم؟ فرشم کن بذار برم چرا میشه من باشه آه. آه. آه. آه. آه. چی؟ نه آرژی، نه من که گفتم این دفعه دیگه گول شیرین زبونی های تو رو نمیخودم نمیدونم این با چی فکری تو کلکه ولی همه یه لا که من داره میخواره میدونی چیه؟ من این دفعه به حرفش کوش میگم و محکم پامو میکوبم به زمینی این اینجوری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 باری، تو گوشتد که غذا، می‌رهاش؟ خواهیم، میگه، مردم، داریم این طرافشون آخ، من یا آیم خوبه آیم، خوبه خوبه. آیم خوبه،, خوبه من یم که آیم خوبه خوبم، خوبم، خوبم برد، زرکی رو کن بازر Ah, şimdi, hayır, ney? Hayır, ney? Hayır, ney? Hayır, Saçlıyoruz o balına bayat kablas. Oh! <tune> <tune> oh. <tune> oh. <tune> oh. alba ama mi arı hatmen hatmen sen tifog yoftadi as benja kasa und no bale chi chejuri as من همه اونا رو برگردونم به شاهی با واقعیش ما با هر کلی زحمت کشیدیم اون وقت تو همه قضاهایی که ما جمع کردیم و خدای من باورم نمیشه واقعا که ون تو چی فکر کردی چاله یه درخت بور شده بود برجاش خاش <تصفيق> میداری میگی تو قضاهایی که ما به روش خودمون جمع کردیم یعنی به خوبی قضاهایی که تو به روش خودی جمع کردی نیست روش شما منظوریت روش اونه آر فقط داره از ما سوء استفاده میکنه ون خجالت میکش اورجی این کارو نمیکنه. شماها باید در این مورد حرف منو قبول کنیم به نظرم من خیلی مشکوک میزنه وقتی بهش نزدیک میشم دمم هشابی میخوره. ای تو ذاتت. پس ما باید گوشنه بمونیم که همه جای تو میخوره. من فکر میکنم که اون خارش واسه اینه که تو حسودیت میشه و. حسودی؟ تو چی داری میگی؟ آره، اون همش به فکر آینده ای ماست. حالی که تو سعی میکنی ما رو به عقد برگردونی. من دارم جریانه منقرض شدنه نسلتونو میگیرم. ولی ببینید چه قشخرهقی به پا کردین. آخه اونا به نصف چیزایی که تو میگی گوش بدن یه هفته ای می میمیرن برای اینکه اونا احمق و زود باورن و تو هم فقط به فکر سو استفاده خودتی دیبا موویز من احمق دیستم بینیزا چکر انگیر خیلی خوب من این نبود من زودم نا آگاه بود راه از اون بچه ها اون ور <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بیاین میدونین که من منظوری نداشتم نه این کارو نکنین لطفاً اصطلاح آزی همین من منظوری نداشتم همین بغبغ دیستم خواهش میکنم I that I had the answers for everything. You were so disappointed to see اون او سرش اون بره سرش اوفینا تمام عالی کار میکنه. شما اینه هم گذاشتین این یه دستگاه کشنده حیواناته این که میگی یه وسیله غیر مجاز خانم، تو همه یه ایالت ها به جز تکزاز غیر قانونیه اصلا برای مهم نیست که این برخلاف قرار به من میخوام <تصفح> فکرشو میکردم حسماست هم باشه به احده خودتون ایک حیوانی جون سالم به در نمیبره نباید اون ها رو می‌باردم چی؟ گفتم نباید اون ها رو می‌باردم من فقط می‌خواستم اونا رو برگردونم همون جایی که بودن من می‌خواستم درست کار باشم برای اینکه شخصیت من اینجوریه یه ای چیزایی تودا که من هست که خودم نیستم اما تو پسر خوب و دیوانه و نترسی هستی به جمعونم اونا حق دارن فکر می‌کنم من فقط یه خود حسودم آه. آه. آه. و قبول کن تو نماست به من حسادت کنی رفین تو اینجا وزت خیلی خوبه هر کاری از دستت برمید واسه خون امادت میکنی الان بهترین چیز براشون توی راستی دومت چطوره آه آه. سنم میگه به دومت گوش کن دومم میگه به سرت گوش کن و من فقط یه شکم درد کننده میگیرم به خاطر همینه که تو الان باید مسئول باشی تو نمیدونی اینجا چه خبره آره تو میدونی پس بگو مشکل چیه آرجه کن دانم گوش میندم یه ثانیه باشه بدخشیم شما مهمونی گرفتین خانم بله درسته یه رو مخصوص اونجاست اون رو کفشتون بکشیم آره آرژ آرژ این چیه؟ آه. اون یه م... لیست از چیزایی که تو گم کردی؟ واقعاً آره یه لیسته برنبالاست یه نگاهی بیندارم تو یه پسر کچوروی منظمی کار جالبیه من یه جا ولدم که تا خیر خیره پر قضاست میتونیم آ... یه شبه همه رو برگردنیم آلیه بزن بریم اونجا کجا؟ تو اون خونه چی؟ آی بینم این فایده ای هم داره؟ لطفاً بیندازش پایین در واقع چیزی که ور میخواد بگه اینه که راست سخته که همه شو میخواد توی جمله بگی اون... من متأسفم. خیلی خب همه گوش کنید نقشه اینه ببینین تله ها اینجا اینجا اینجا اینجا اینجا اینجا اینجا اینجا اینجا اینجا اینجا اینجا اینجا اینجا اینجا یه گندش اینجا اینجا و یه چندتایی هم اینجا جی تموم شد؟ نه یه آلمه نور هم اینجا کار گوشتن توالت خوبه؟ انگاه زرد کردی؟ من یه لحظه حواسم پرد شد ولی کلشو گرفتم یه سری تله وجود داره ببخشید من باید اینا کما عوض کنم حتما خیلی خوب اینا ما ایم باشید باشم من نخوا باش باش لطفا که تو چطوری چون اتوی خوشگل باشی؟ ها اینا اصلا مهم نیست. تازشم من ماشینم، ماشین همیشه خودمم. نقشه سه تا مرحله ساده داره. مرحله اول نورو بهتر کن، مرحله دوم براتو، مرحله سوم یک کو قازا بزن اما اینجا مسیدج نظامی دیوارا خیلی بلندان درا غیر قابل نفوذان، حالا چیکار کنیم؟ چیلیدش قلداده است. <مدنور> اون قلاده، عین هو در رو واه میکنه و اگه... ای پسر، تو فکر میکنه اون میاد قلاده رو به تو تقدیم میکنه نه نه ماد مازرخانه اون، به تو اون؟ من؟ تو اسطلا، موخه گربه رو میزنی تا قلاده رو بگیری در واقع با استفاده از... بگه بدم؟ و غمیش های زنانه <تصفح> خیلی ملاخره دیده نه فهمیدم تو چی داری میگی گوش کن رفیق بهتر خوب چشماتو باز کنی این کار تو حال متوجه نشدی من یه راضوام در ظاهر شاید ولی وقتی تو نگاه میکنم یه روباه میبینم کاری که ما باز بکنیم ساختن ظاهر قید کجایی؟ ها؟ خیره چی؟ کش بکن، کش بکن، ببین افسر. کش بکن ده هوا. آماده نوشته لطیفانه. باباردی. کجی نکتی یه چی مونده؟ خیلی خوب، خوبه. ها آقایان، کار ما تمامه. او چقدر تو دلبرشی به من شدی تو دل میگی او او او <boom and> <tinyfi> <Wow. tiny gdy Daddy> خیلی خب بچه ها تموم شد وقتشه بریم اه دوباره نه اینجوری نمیشه اون چیزای لعنتی به نظرم زنده میان دیگه کارتون تموم جونورای موزی بخی kobami kobami ay mali ay mali ay mali ay mali ay mali ama şimdi dostlar. Arij, şimdi ne iş oluyor? Hami, ne Bejo, bejo, ne bir girecekti دو و سه، دو آره این خبا میرمه به کجا در میرمه افره، اینم بگیری تمومه ما دوم بمیریم پس آلیه خیلی خب دختر، نوبت توه ای پسر بهتر اون یه گربه یه احمق باشه صدا حرکت o oh boya ekici kulübe bak hele giriş Hey, you hey, on تو یه گربه ای تو یه گربه, گربه. منظورم اینه که من یه گربه ام آره خوبه پیشتا از اینجا برو گام شو میدونی صاحب من از ولگردای پا اصلا خوشش نمیاد ولگردای پا خیلی خب خودت خواستی لودو رو ببین چه قلاده خوشگلی گردنت میتونم یه نگاهی بهش بندازم نه نه نه نه نازک تمایو من نباید زیاد به موجودای جنگلی نازک باشم باید از شهر قطعون آخیش دوری بکنم چرکای من آه. چرکای من آه. خیلی خوب من از این وضعیت کرد که هر کی نگاهی به و میره گم میشه حالم به هم میخوره برای اینکه اونا فیش میکنم من چرکم به زبونت چیزی بهت بگم آقا من هرچی پودر و کرم و چیزای آرایشه به خودم نمیمونم که این اری سک بشم ببینم تو اصلا چیزی راجب چوب به میدونی اگه میدونستی مواظب ذهنه گوشادت بودی ساکت تا به حال هیچکس با من اینجوری حرف نزده بودین خیلی خسس خوش میاد آ او پسر اون جایی که من ازش اومدم خیلی بهتر از یه آرایشگاهه. خب بچه‌ها را بیافتید. تو قوی هستی؟ بوی تو واقعا دیوانه کننده است. آ ببینم منظورت چیه؟ چشات خیلی شهلاییه. چشام شهلایی. آره. اونا برق میزنن برق میزنه. جدی؟ فکر کنم این همون قسمتی بود که من حواسم پرد شد بالاخره کفشه و ماشینا رفتن تو یا نه خب، تو اسمم داری آره، یه اسم شرقی دارم عزیزم آخه من شرقیم، معرفی میکنم هوشاین بپری بچه این چهار را شهباز چه اسم سختی داری، جیگر میشه فقط هوشی صداد کنم آره این حیوانات جنگل وارد میشن چکا کا ہے سو نیارے بچو بچو صورت نہیں میں کیا کر بچو ہر جمعے روپے روپے روپے o kadar manyetik işi. malum bir A B B B BAP трememex A behavi solved. B lateral var. B黃 MUJER gehört. B четы K آو پسری آره یه صورت صاف عجیبی داشتون خیلی زیبا بود همه میگن من به اون رفتم جالبه تو خونه من یه جای بلند بالا دارم که یه فرش خیلی خوب روشه بریم نشونت بدم. نه من هنوز درباره خودم به چیزی نگفتم ایفر کار همه تو درسته اون چیه؟ آن چیزیه که آدم رو بزخواب بیدار میکنه Şimdi, Onu koyduğum Birim birim birim birim Birim birim birim Oh no. شما باید قبل از که اون برگرده برین بیرون نه بدونه چپس هر کس چی؟ رو پنی، برگرد نشسته تلویزیون. هدیه، تو آچور چشمی بپا. بسیار خوب آرچی. هدیه، صاحب کو کجا میره؟ تو مام جای میخوره، تو مام داره میخوره. آرچی، واکن اورشه‌ای بیا بریم. صاحب کو بیس، فقط یه ثانیه طول میکشه. وینسنت، وینسنت چیه؟ وینسنت، اگه چربی بدهی به یه خس، منظورم اینه که من هدیه بده کارم چیه بابا؟ آسته هنم پری. Doppa! Ne nuru da ran mahv Haydar. Haydar Azizam. Kukuşkane, yemoşe murde sfe turabla me فک کردم مردی من اینو از شما یاد گرفتم. آ قربون تو دختر. بیا جلو ده عجله کنین بچه ها زیاد وقت نداری. داری چی کار با این حدی ما که لازم داشتیما برداشتیم. بر نداشتی چی خرج میزنی؟ زیادی هم جمع کردی. هی گوش کن من فقط همینا چند دارم که اون کاری غذا رو به خرسه خراب بدم. اگه چکسی اونا نباشه اون من منو میکشه. فهمیدی حالا ده منو رد کن. چی؟ Ana konu. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. آه، رسته لن بوش کن، بهتر بیخیال شی چون این کار شدنی نیز آخه منیه آه، آه، و... آره، شری همین که این خانم گفت آتش آه بو تو رو از گرس نمی نه، عزیزم، الان دارم فقط زیبایی می بیرم. من هیچ بویی رو نمی فتنام از زماغت هم مرخصه. 아오이 드루시 아니 맞추 괜찮아 패다 무둥이 무둥이 무둥이 무둥이 나신 따라 봐어 아이지 바지 아이고 어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어 به خیلی خزنده <تصفيق> تازه رام <شدیم. تصفيق> او چرا بو گم میدیم؟ به نگه تو گذاشتی اونا؟ او نه، بیازو خونه افر انقدر وقت وقت نکن خانم این حیوان با کمال انسانیت دور ریخته میشن نه، نمیخواد با انسانیت هر چقدر غیر انسانیتر ماشه بهتره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 به چی میزون میشه؟ تو در بانده اون درست میگفتی وی من باید گوش میکنیم واقعا متاسفیم نه میدونستم نباید بهش اعتماد کنیم همه شخصید منه باید بیشتر فکر میکردم باید بیشتر فکر میکردم بینزد خب من داشتم میومدم پایین تا بکشم ولی وایسادم تا نمایش رو تماشا کنم و باید بگم که اونجا یه چیز زیبایی هست یه چیز فرید دهنده و خشن اون خود یه یه نفر نشون میداد که من تا حالا ندیده بودم آرژی واقعا کارت درسته تو غذا را گرفتی و اونا مرگشو تو همه اینا را گرفتی و میخوای مثل من زندگی کنی تا هرچی که میخوای داشته باشی من الانشم دارم آه. چی؟ اونا؟ داری شوخه میکنی تو خودت گفتی که خانواده یه نفره ای درست میگم؟ اینجوری کسایی مثل من تو زنده میمونن و عده این وسط تلف میشن به این میگن زندگی زندگی همینه حرفمو باور کن به نظر من اصلا تو به اونا احتیاجی نداری در واقع خیلی هم دارم و الان اونا به من احتیاج دارن بس من این لازم دارم آه... Okay. آه... Ha. Ha. Allahu ekber. Niye bu kadar ای، به کش کنار، نمیشه بیای تو پر رو نه، این امالیت نجات دارم، نجات ترمیدم نه، سارت کنم که حتی نواهاتم از از پی نسید نمونن حالا تا اون روم با رو بیمت، از درو چشم دور شیر؟ اونجا خیلی؟ چی، قرر؟ چی، قرر؟ قرر؟ ایفال یاشکون درون خانید خوشحال منم که شما <بعلا> رو می‌بینم. به دور بزنید. مقصد انتخاب شد. لطفاً دور بزنید oho bu bassa kuş nedir lan la la la la la la la la foyan içe mi olur خير شو بنشين gönül بزاریم بیام تو حق بازه دوم خانون آسی بجاریم بیا تو بچه ها خواهش میکنن بعد از اون پاری چه با ما چارت؟ اما اون برگشتی و یه خیست با خودش آوردی. برگشتی برگشت ها نمونده خودش نکنی. تو ها نمونده های، وقتی ما رو کن کنیم و میدیم اول اون شروع کرد؟ یادم بهتون میگم، اون میخواد کومت کمون کنی اما ورن، تو خودت میگفتی که به دو دومده اعتماد کنی اما اون الان نمیخوادی آو،, آو... نمیخوادی چرا فرچهر نگفتی؟ زمدون این گوشم اداجه؟ و بعدشم دوستاتو ایا نید؟ تورن یه گردشو بچم کنید Ra get hey hey Oh, Ra شما رسیدیم این کمر درد آخر منو می کشیم بچو بیم، بچو بیم مفرق بچه ها هستن همه دلقه‌گی ترزداد بازه بازه ماشین جمع تریبه ماشین جمع سورتای دشتتون را شما بدین چرکایی کسی؟ به تو همون جنگل مهمونی بگیرین درسته؟ با آشمام هستیم دیگه کامیه بر! همه اینجا ببر من گیجش میکنم دیبونه شدی؟ بگیره میکشته. اون دوباره منه برای خونوادت مراقبت کن من همین قشط را دارم همه ی خونواده باید یه کاری با کنیم ما وقت نهاریم ای هی Apa çovun? İn la masavu Archie bu kohri bozamcemi. Alacağım. hami Ha, o, o, Eh, la la la la la la, oh oh oh, oh oh oh oh کشنده ی حیواناته آمادش این عشقه هاش حالا <و strikes> <أو>, نه نه نه نه نه نه نه نه خدایی ما، جبیه بچه روز اومد شده بیا اینجا همین، بیا اینجا، تو نابقی بسرم و تو ورن، هیچ وقت لاکتو تعمیر نکن آره، خوش که به دندت خود لطفاً پرونش رو پسش بدی؟ قاید ببریمش، اون حسابی سوخته. حالا متوجه شدید که چه اشتباهی کردی خواهش می بیکنم سرکار این کار اونجونه برشناس هست اون اینو به من فروغ به من ایچ ربطی نداره هی هی هی آه. این تو حیات شما بود اسم شما تو قرار داده پس به دادگاه دا اینو بگی نه گفتا که این تخصیر رو من ندید بذارید من برم شما نمیترید سلاس رو بیارید من رئیسیت بودیر ایمانه که نم تبون نخوری کن نذاری بازی او نه چرا بازی اصلا اصلا بیا زود باش اصلا پس این همون جنگل کذاییه خوش آمی بیا پسر میدونی آر جی اگه از همون اول به همون گفته بودی که میخوای قضاها رو برگردونی به یه خیلس عصبانی خب بهت میدادیم تا ببریشون جدی؟ آره راستش این کاریه که خونواده ها میکنن اونا از هم مراقبت میکنن من تو الان چیزی نداشتم میدونم اما باور کن که این یه دروازه است به سوی زندگی خوب کاش اینو زودتر بهم گفته بودی راستشون یه ارتباط برقرار کردن اشتباه بودی. خب چی میگی میخوای جزییم اولشی؟ اوه بیا بکلام اول خوشحاله بیزارم تو خانه دوست دارم, ما دارم. یه کار شب نیست. یه بچه ها. من اینه که فقط 267 روش تازه مسطور مونده پس غذا رو چی کار کنیم بگو همین من درخت پر کردم پیدا کردم <مزم> تقدیم به بچه های خوب ایران یه وسیر است که آدما ها همه توجه و حواسشون به اونه فقط بهش میگن تلویزیون من دوست دارم آدم ها نیاز دارن که با دنیای اطرافشون ارتباط برقرار کنن واقعا عالیه و همینطوره احساس نیاز میکنن که یه جا بشینن تماشای تلویزیون هر دو نیاز اینا رو برآورده میکنه قایله بیاین <تصفح> بچه‌ها همین این بچه خانواده جمعشن میخوام تلویزیون ببینیم چیپس و پفک آوردی من خیلی دوست دارم بوزا بده بده بده اوای من نمیتونم رو پیدا کنم هیچکس کنترلو ندیده هر ورداشتی من میخوام معلوم میشه که به بچا کادو میدم یا که اون پوشیدو رو سر کارش کذاشت مثل بانر دو جنگ ستارگان دو شوتی! بنر که تو جنگ ستارگان دو نبود بنر تو هنها دختری در مزرعه بود با همزاد پنده بانر و بلش رابین هودو بکن بان اون رو قبلاً دیدن چه رکوندیم؟ هیچ کس از اونا نمیخوره؟ از اونا جیزه به مامان میگم بس میکنه رو دماغت بر اونا رو چیپس رو چیپسا بری نبزلی موردی. و بده بلون. این قضا حرف نره شرینی هایی بدونه چربی؟ بخورمش امکان نداره همیتون تصیب برده بارم بخوردیر فلکش نمیام بخوردیر <تصفح> Guaranteed personality I wasn't born So much as I fell out Nobody seemed to notice me We had a hedge back home In the suburbs Over which I never could see I heard the people Who lived on the ceiling Scream and fight Most scarily Hearing that noise was my first ever Feeling That's how it's been Supermarket I can't no longer shop happily I came in here for a special offer A guaranteed personality I'm all tuned in I see all the programs I save coupons from packets of tea I've got my giant hit tech album I empty a bottle and feel a bit free Kids in the halls and pipes in the walls make me noises for company long-distance callers make long-distance calls and the silence makes me lonely I'm all lost in the supermarket I can't own your shop happily I came in here for a special offer a guaranteed personality I'm all lost in the supermarket I can't own your shop happily offer a guarantee personality vat sakko ani hoş değilsin ne hoş